رسیده‌ای علی مبارکی ولآم وله امرن نه و خلی و غیان خلق الله که این خلی و ری الله تفسیر شده باشه به یعنی گفته شده باشه که مراد تغییر خلق الهی است خلقت الهی به هر نحوی شد شود و بگیم اطلاق شامل ریش تراشی هم میشه قایت و محالا دیگری که تغییر خلق الله هست که جایزه اونا به دلیل خارج شده باشه اطلاقش خودش محفوظ باشه این خلاصی استدلال که محصوصا این آهبین مقتبلا اگر آیه تفسیر بکنه تغییر دین الله این تفسیر یک امر است و این خلاف ظاهره ظاهره تفسیر به یک عمر ظاهری باید شد. مخصوصا فلیوبت کن نه آزان هم داریم که گوش بریدن چهار پایان باشه یا شفت کردن گوشیشون باشه قرط یا بریدن کردن پس این یکی هم ظاهر خلقت الهی باید باشه نشین این استدلالی بود که از خوب خب این استدلاعی که خیلی ضعیفه خیلی روشن نیست یعنی اون فضیبت کن و آزان الان آم یه چیزه این مطلبیه. بله احتمال داره که مثلا گفته بشه به اون قبلی این باید چیزی زیگری باشه اما این هم دلیل نداره اونه سیاف همیشه یه فریعه که اگر فریعه ای برخلاف نباشه ظاهرش که آیه مبارکه آم به خاصه یعنی فضیبت کن و الان آم خاصه بعدش عام که یغیران دین الله که کلیه دین الالی رو تغییر میدن دیروز بحثی و اول بود که اول باشه اشتباه در وسط و بحث این بود که در تعابیر قرآنی به عنوان یک کتاب در مقام استنباط و استدلال از <تصفيق> جا بودن قرآن رو آن بله شاید اون هست ولی بله آمهنی هم, هم اون یک جهد قضیه است. اون به اصطلاح ممکن است یک واقعیت از جهات مختلف بررسی بشه. یک جهت به خاطر گمراهی و زلاله یک جهد این که انسان رو خیالات و اوهام زندگی میکنه یک جهد از این زاویه که خیلی از نعمتهای ظاهری رسولش محروم میکنه مثل اینجای این حیوان رو نمیخوره. یک جهدش هم خاطر اینکه که خیلقت دگاهی و راهی به خدا قرار بزر روست ممکنه خود نداره اون که حالا شد در خیلال تفسیر مرزه در اینجا باید بلحاظ قانونی و حقوقی به اصطلاح نوزی یا اعتبارات قانونی مورد نظر قرار بگیره و این یک مبحثیت خودش رو مباحث قلوم و قرآن و به یک معنای تو اصول هم مفرح شده با امان حج ما در اصول بیشتر از این زاویه مطرح کردیم که آیه زواهر و کتاب حجت هستن یا نه که خب آیه این ها زواهر کتاب رو حجت نمیدونن حالا روی اون جهاز مختلفی که از ما شده یا میشه احتمال داره چون این محصوب شراران از کردن تکرار نمید. اگر ما زواهر کتاب رو حجت ندونیم که خب نمیشه تمسل کرد مخصوصا بعد از اینکه این آیه مبارکه، چند روایت تفسیر شده دانه دین الله امر الله به ما به پس نمیتونیم به آیه تمسک بکنیم برای اینکه که فلان کار حرامه مثلا ریشتراشدن حرام من ارز کردم اون آقایونی که آمدن گفتند حساب خسا به کردن یا وشم و خالکوبی و اینجور چیزا حرامه اونا میخواستن اصبات و حرمت همون عناوین رو با آیه بکنن علی اثباته ورد اما وقتی کلمه ی رب دین الله خلق الله یعنی دین الهی امر الهی ما با خدای الهی نمیتونیم اثبات و حرمت عناوین بکنه این فرق اساسی است دوتا این دو تا. اینی که مثلا خود امروز از علمای طبع توتوی در المیزان که مثلا ممکن بگیم مراد دین الله باشه شامل اختساا هم بشه و شرم بشه اینها اینطور که ایشون نوشتن و قبل از ایشون هم نوشته شده که ما معنای آن بگیم یعنی توجه نکردن که این دوتا معنای عام نیستن یعنی فرس که مثلا تبری یا که معنای عام چرا چون پیش اونها وصل شهر حرامه تفرس چون وصل شهر در سمت بر حرام شده میگه اشکال نداره فرقیه خلق الله یا دین الله خب میگه عبدالله مسئول گفت یعنی وصل شهر مثلا اگه اشخال پونم حرام دین دینولار این آنشیه ای ما که توجه نکردن اون مطلب را اینجا آوردن نفهمیدن که در روایات اهل بیت وصل شعر حرام نیست این دو سو کتر این خیلی که مشکلی که ما داریم این مشکلی اینه که گاهی اوقات مطلبی رو ما از مصادر عامه میاریم و تهمان نمیشه کافی در اصلافش که این مطلب این زیرون شما پیش ما درست نباشدن کلا اصلا این زیربنا رو ما مفرح نکردیم در میان آمنه چون وصل شهر به عنوانه حرامه پس اگر تغییر حربالله شامل چسوندن کلاهیست بسیار وقت شر این کلاهیست گذاشتن کلاهیست حرامه چون وقت شهر حرامه پیشونه چون حرامه جز دین اللهه لذا میگه اشکال نداره که یا غیرون نخرق الله الله اما این توجه نشده که در روایات ما این کلاه بیست حرام نیست یه قصر <تصال> بودیم خود کلاه بیست بودشن حرام نیست اصلا داره لا بحثه به ما تیزده این مثل مرع اصابیه هر هرچی که زن بخواد داره شوار زینت کنه اشکال نداره و اصولا توجه نشده که اگر ما بخواییم هر مسعودو مثل فرزن هر فرد نحباس منصوب از صبح قدیه از تابع این بگیری این با دین الله اصلا در فقیل و اصلا در استظهار فقیل خرق میکنه از تر در دیگه یه باید مرحومه علامه قدس الله نفسه خدا علامه شکلی محاید است در مبارس فقیل از برآن بارد نشن علامه توازه باید زنبان و توجه نفرموندن که این باید یک معنای جامعه بگیرند، آب، یعنی از علمی اشکال داره فنمی اشکال داره اشکالش اینه که اگر تغییر خلق الله مثل برس باشه مثل خطاق باشه اخت کردن باشه خود این اناوین حرام میشن خدا آیه خدا آیه دلالت بر غرمت این اناوین میکنه اما اگر تغییر دین الله مراد باشه اون وقت این اناوین حرام نمیشن مگه اینکه که اصفات به چون تغییر دین الله نقطه خنده روشن شد باید اول اثبات بکنیم که جز دین الله هست که وصل شهر حرامه بعد از این که اثبات شد جز دین الله هست اون یا قیل من حلق شامل میشه مثلا همین حلقه لهدیه، اگر تغییر حلق الله رو به ناس اختصا و وصل شهر و خالکوبی و نمجم تیز کردن و اینجور چیزا به معنا خب ریشتراشه این روزه همون هست خب ریشتراشه این روزه همون رو میشه فهمان بکنه پس منابراین با خود آلیه اثبات و حرمت ریشتراشی میشه اما همین گفتیم یو قلیان و خلق الله این دین الله هست نقطه فنی روچند بشه اون وقت از نظر فنی باید اول اثبات بکنیم که تراش حرمت تراشی نردیم جزه دین الله هایه تا اون وقت خلق الله برای برایش تر یونلا نیاز به واسه نمی الله چی میشه تغییر یونلا برات انجام داده دینون اینه که هنوز یه حلاو تغییرش روشن شد، پس این معنایی که مرحوم علامه فرمودن میشه یک معنای جامعی گرفت از در هم تفسیر یکی نخوندم تفسیر طبری هم داره که خیلی خودت تقریباً خبری متوخای 30 تا باشه تو ذهن اون جاری نشو 30 تا نه نه نه تقریباً این که تو تو ذهن منه اگر واقعا خو... و... مرگ ملهی اصلا در بعضی مباحث فقه یا آرايشو ذکر میکنن و ذهن ثوری راهنما خب تو آرايشی یکی شو مسئله قاضی بودن زن به نظرشون جواز اجازه میده قاضی شده زن اگر آرايشون توی مباحث هم پیش ذکر میشه تبری. و این صاحب هم تفسیرش تفسیر مفیدیه صحیح که نکارم شاب شده باشه تحقیل باشه خیلی نکات لطیفی داره این تفسیر و خیلی زرافتهاد داره و خیلی مبادی کار رو روشن میکنی علایه حالا این ده از نکات گفته شد یک پس تا اینجا دیگه جمجوری بکنیم اینجا کجا رزید اگر ما زواهر کتاب رو حجت ندونیم تو خب یک چیستم کنیم. این یعنی حجج که حجت حجته اصولی، تبیین استکمی اطلاق ها در موارد شک و برای استظهار و اصولی اونجا خارج اگر بنا حجت باشه، اون مقدماتی است که من دیروز عرض کردم، سوال من در کردم که حاصلش این که تعابیر قرآنی در احکام فرق می‌کنه. البته من به مناسبتی توی بحث صادق هست، این مطلب رو گفتم، که چند بارم از کردم بعضوها میگن که مرجوم آزیا مترافع شد تو مقالات توی تحیات یاد نمیاد بیده باشه تو مقالات مرجوم آزیا مترافع شد در یک جایی این بحثی که مفیده به نظر من چند بار گفتم اصلا اول ذهنمون نصیب بعد این موازده تو مقاله نیادشه وارد خاطره نشود ما خلاصش اینه که این صرف بحثایی که ما در اصول گذاشتیم حتی اون موازده الفاظمون این چیزی انسجام با واقع عدله ما نداره خوب گفت بکنه مثلا لا سیغه نه ظهور در غرمت داری ظهور در فساد داره یا ملازمی با فساد داره لا من از کلم وقتی که به کتب آیات و روایات رو خودون نگاه میکنی همشه سیغه لا تفعل نیست همشه سیغه لا تنکه همانکه آبا اکن نیست هرمت علیق و اماتگون هست فردرالبی هم هست همه شدید لا تفعل نیست لا چیه آیه مبارکیه لا تعظم و عقدتن نکاح که نه به عقده خورده اصلا به عرض مخورده لا تعظم و عقدتن نکاح حتی یک لغای کتابا عجله اون چی که نه داریم تابیر مختلفه متاسفانه در حشول یک زوابط کلی گدرشت درسته نیم خواهم بگم اشکال داره اما با واقع عدل لیما نمیخواه این یک گرده که آه. یک جن در ازایی با خوب دقت بکنی یک نواخ نیستن این که اصول و بوده، این که در اصول یک شکل معینی داره از پر این وقت از دو فکر میکنی اصول جنبه شکلی داره مثل منطق سوری منطق عرصوی بیایم بر اون قواعد ریاضی قرار بودیم مثل اون شکل های قرار بوده. این صحبت شده ولی که اینطور نیست حالا دیگر از اونجاهات دیگری که داره اصولا تعابیری که در مجموعی کتاب و سنت آمده مختلفه مثل در رواهات اعبارات یه عبارات واحدی نیست یک رفو داره اینه یک رفو یک تعابیر واحدی در کار نیست اینه که باید خوب دقت کرد برای استزهان غیر از با اصولی ما باز هم در فقر گیر داریم یعنی این اصول نمیتونه تمام شعر رو کارگوشا باشه جاهایی در اصول هست و بنده حسابات اخیر گفتن باز هم چند بار معیار در دابتهی فکری و اصولی اینه اگر موردی باش برخورد کردن کرده اگر عام برخورد این اصول خیلی مختصر اگر موردی که مثلا ضرورت اینجا ضرورت ای معنی شیه فساد هست یا نه این میشه اما از این لا تفعل مهمش چیه؟ موردی یک حساب رسولت عمومی و آن و شامل حساب دیگر ارض شد که در بحث گذشته که در تعابیر قرآنی وقتی نگاه میکنه حتی در تعابیر سنت این اختصاص قرآن نداره در تعابیر سنت هم همینطوره مثلا در همین بیشتراشی حضرت فرمان تو چرا اینطور که از این بیشتراشیست گتون انا لا ما این کار نمی کنیم ما به عکس بشار بلند میکنیم کنیم و سبیلها رو خطاه می کنیم این, این تعبیر انا یا امر می ربی این ویل از این هست که مثلا میگه لا تحلیل رو خیلی تر این اناوی عنوانها فرق میکنه کنه اینه که به نظر ما باید یک قطعه قرابان تری بشه قیل از خود قواعد اصولی در آیات مبارکه و در روایات موردی هم بررسی بکنیم انحساب به مباحث اصولی نند تقرون تخمین مندی یه دیروز شد واجه به حکم موادی و حکم را خیلی از حکم هر شد که در روایات ما و در آیات مبارکه منهیص المجموع تعابیر مختلفی وجود شده یک تعبیر نیست بعضی از تعبیر ناظره به مقام ملاکات هست مثل بلا آمورن نهان فلیل نه خلق خلقالله این بیشتر ناظر ملاکاته که شیطان امر بود نه لا تو غیر و خلقالله دارن بیاد تغییر خلقالله این به ایها و به دستور شیطان نه شیاطین به یوهون الاولیانه زخر و فلقه این جزء ایها دات شیطانه خب اگر جزء ایهات از شیطان شد چون مثلا طریق اعداش شد و طریق رحمانی نشد خواهی نخواهی میشه حرام تو اونجا باید کنه آزار نره اما که حرام بود قبل نشان داره ولی اول لعنت نمی‌کنه یا قرار می‌کنه جزء مقاومت قرآنی که ما لا بعد الحق الا زلال هر چی نواجه زلاله پس اگر زلال شد انا او یاکم لعلا حف لعلا خودن او او, او او فیولانه یا هدایت یا زلاله پس این که شیطان زلال ایجاد میکنه این معروض میشه که جزء حق نیست جزء هدایت نیست جزء زلاب و خایی نخایی این زمینه زمینه تحریمه این واضحه خبسته اگه تغییر دین الله باشه خوبی دیگه جزء بزر... جزء اساس تحریمات اساس دین رو مقبول نکنه جزء تحریمات اساسی است این درست اما بحث سر بحث قانونیست آیا ما می توانیم از این ات... اثبات اطلاع بکنیم مثلا بگیم فرض کنید مثلا من با مثال تغییر خلق الله آلا حالا همون به معنی ظاهری خودش ببین به جمعی مراتب حرام اطلاق داره مورد شک رو بوی مراجعه کنیم اون که که ذهن برده در طرف چون موارد این شک من نگذا در کلمات اصحاب اون که به ذهن برده در این جا میرسه در آیاتی که بیشتر جنبه های ملاکی داره تقریبا و از نظر اثبات و حکمی اثبات میکنه اما در حکم دلیل لبی به منزله نه دلیل لوبیز به منزله دلیل لبی یعنی تقریبا بخویم مثلا ارزش در حکم خسم قبه عقلیه در حکم ملاکات عقلیه اما اینکه اطلاق لحظی داشته باشه جمعی موارد شامل بشه اونطور نیست اصولت کار به این مورد نداره این مورد چون به و تفسیر به دین الله شده ممکنه که اون جبیه مراسل تفسیر دین الله حرامه کار به این مورد نداره اما به طور کلی اینطوریه طوریه به طور کلی اونایی که ناظره به ملاکاته اونایی که ناظره به مقاماته اینا یک قدر مستیقتن بیلو میکنه مثلا از رجال قبوامون حالا نسا به ما فضل الله به از آمالا برد این قبوامیت رجال خب اولا دقت بکنیم آیه مبارکه مالا ازواج نیست مالا شوهر نیست اصولا مرد و زن نه اینکه این بود شد که حالا این موزه میشونه که اصطیقه مبالد قیامه این به معنای ما به اصطوره ما مدیریت رهبری اداره کردن سرپرستی کردن اینجوری میان این مورد از قبلان یعنی نیرویی که نیروی دیگری رو به قوام میاره که من در تفسیر قیم کنم خواهیم من دین قیم رو معنی می کنم جا اون پس مکن است بگیم مثلا این آیه مبارکی قدر متعقل در اون جایی که صحبت سرپرستی اداره رهبری دری ایناست نه مراد این که پس به یک اداره مثلا کارمند بشه من با مثال ما هم در اونجا ارژال قوامون و اصلا نازره به مسئله خصوص شوهر اصلا شوهرم شاملی چون به ما انفعود داره برد. اما به ما فضل بعضا هم ملاق این ملاق مناسبت و همون مقام قوامیت و مقام اداره و سرپرستی و مدیریت و رهدری مناسب با اونه و این طور ما بگیم که در این جور ها اون قدر متعفل رو پس اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه و تغییر خلق الله هم به معنای آم بشن بگیریم باز و عموم که شامل حضرت حلم شد باز هم باشه اگر این معمول هم قبول این تفسیر قبول نکنیم و بگیم مراد خلق الله مطلع خلق الله وقتی من تو اطلاق ازش در میاریم که میگه مطلق تغییر و خلق الله یک مواردی از تغییر خلق الله قبل موثقنها قبل مثل مثلا که مسلم خلاف شریعت خلاف عقل اینجوری اینطوری مثلا در میاریم اما اثبات عموم رو و اطلاق رو با مثل این آیه مبارکه نمیشه این راجع به آیه حالا برگردیم به اون بحثی که دیروز عرض کردیم از زمانه همون اطلاق ملاج حدش حد حکم عقلیه به حسن قب بیش از اون نیست لفظ. چیز لفظ خلق الله هست اما چون امر شیطانه یعنی باید مثلا تغییر خلق که به امر شیطان باشه اما موهای شما در حال شد بریدید خصوصا که شارع فرموزی بیش از یک خرده در آتشی که به امر شیطان نیست این به دقیق بکنه نیست دیگه به ائمه فرضیه این سر، اون تا اطلاع تغییر خلق الله بالغوضش مخصوصه پس باید مراد در تغییر خلق الله خاصی باشه یک چیز خاصی باشه الا خب این که هیچ اون نداره اونها عین کاری نمونده رو بیوستم معنا بکنه غیر از اصلاح نذاشتن این بحث قانونیش بود دیروز نارس کردیم از زمان صحابه این و بعض فقها که ائمه علیهم السلام در این زمانه تا که تفصیل دیگه‌ دیگه فقها ها و ائمه را صحابه و اصحابین و فقها البته تا اصحاب و تابعین از ما فکری که انجام می‌کنیم صحابه و تابعین را فقها ائمه در اصل فقها قرار می‌گیرند در روایات ما نقل شده به تغییر دین الله تو بعضیش، امر الله به ما امره به زمان صحابه هم شده که خلق الله مراد از شعر، دقیقاً اون آیه رو خوندن. خطا مثلا لا فصل الناس علیها لا لخلق الله لا این دو تا آیه رو با هم دیگه رفت دادن. بعد نیست این دو تا آیه رد داده، البته آیین علمای ما رفت دادن باز نشو ببینم برش کردن به رییشرچی. چون ممکن از رد پیدا کنه بازم به رییشرچی برگرده. من اول ردش میگم بعد ارجاش به رییشرچی. امروز که این در بحث آیه منشان اما ربط این دعایی با هم ربط این دعایی با هم به خاطر همون کلمه خلق الله در کار گرده شده این نکته خاصی نیست این دعایی ربطه ده این یک یکی هم خیلی مستبعد بوده که تغییر خلق الله مطلقا حرام باشه مخصوصا اگر خلق رو نانه مخلوق بگیریم تغییر مخلوقات الهی مطلقا حرام با اصولاً معنی تغییر خلق الله در اون درجه عامش اصلا از اوامر شیطان باشه. خوبی مثلا تغییر خلق الله کلا از اوامر شیطانه خارج موارد معتبر اصلا این نمیخوره نه با ذوق اسلامی میخوره نه با افتکازات فطری ما میخوره نه با رد شریعت میخوره این خیلی بعیده. و چون در اون آیه مبارکه خلق الله به کار برده شده تا تفسیر دین شده پس مراد دین و این هم طبعا اطلاق پیدا می‌کنه اگه اینجا باشه چون تغییر دین الهی به هر نحری که باشه جایز نیست این کار شیطانیست هر نحر بله اطلاق دیگری که این فلان فعل چون تغییر خلق الله نه باید اول اثبات بکنیم این فعل جزء دین الله بر سمسکه باید میشه مثلا اثبات بکنیم حرمت حلق الهی جزو دین الله بر سمسکه باید میشه وقت تمسو که به اطلاق آیه برای افعال دیگه نمیشه که هم. امرالله به ما امره به یعنی احراز بخوری ما امره به هست بردیگی بل اگه احراز شد امرالله تغییر دین الامی به یه های شیطانه این درست اون آیه مبارکه که کلمه دین القیه زالکت دین القیه آمده از کلمه دو مورد دیگر در کلمه دین قیم یکی دو موردیگم به کار گرده شد یکی در توحید که که امرا لا تبرو الا یا حضای که یکی هم در اشوره غرومه انا من شیعه اونواره که انا شوره انا الله اسماعه شرف شام کتاب الله منها اربعه اتون غروم لا لکت دین القیم تا لا تبرو موفیه انا انفرسه یکی هم اینجاست اون تعبیر به دین قیم در این سمورد آمده حدیث قدس تعالی یکی از شروط حرمه که توحیده و انصافا تقریبا میشه گفت به استثنای شروه و حرم. اثر حرمی زمینه خاصی دیگه دشته شده زیر شده و الا توحید در این مورد جز موارد عامه یعنی یک چیزی نیست که خاص باشه موردی حساب نمیشه این راجب کلمه دین غیبی این آیه مواردی در سوره روم و آیاتی از سوره روم فعدا ما ذكر الدين حنیفا از اول آیه اینه. سعر مجحکل دین حنیقا فترت الله علتی فترت الله علتی فتر الناس عليه لا تبدیل لخرب الله زالك و غیم در جربت داره توش دنباله داره کردم تو ذهنم. داره و خیل. سوریه روم بزا... این منیبینه لایه بعدی نه آیه فلسل فلسل نه اونم نه خود این آیه زال کردین و نکایید ولی نه میدونم نه من خیال میگن یک حکم مثل اونجا الله فلات تقوی نه از بود اونجا می‌خواید حکم دیگه آمده است نه ولی این آیه مبارکه در اون سوره آمده سوره مون. خب میدونید که از قدیم بین اصحاب خودمون هم اختلاف بوده ادهه قائل بودن که در مثل این آیات مبارکه ما رجوعمون به روایات اهل بیت. در اینجا ما روایات تأویهی داریم در این کتابی که منصوب معروف است به کتاب تصیر علیه ابراهیم در زید این آیه رحمه مجایی دین حنیفن حنیفن تاهر کرده باع خودش نرم میکنه من از میکنم اینجا الان اگه مراجعه کردم یکی دو تا حدیث در اینجا هست این احادیث مال علی بن ابراهیم نیست مال اون معلف کتابه که تا روز عرض کردم چند وسویش عرض کردم این کتابی که الان به اسم تفسیر علی بن ابراهیمی این جزما مال علی بن نیست که احتماله یعنی چی مال علی بن ابراهیمی این هیئت موجود مال ایشون حالا مال چیه؟ این رو شوخ بود و تفسیر علی نورمیشی. ان تی از احتمالات یعنی احصادی یعنی که در در مرحله تفسیر اون که اما کتاب اصولا تعبیه تفسیرم داره اما بیشتر خاصش تعبیه. و مخصوصا من سابقا هم شده عرض کرده باشم یه مدتی از خودم کتاب‌های دراری مثل برزری ام راجعه کردم ما نظرم پی امیرالمومنین بحری بود ما نظرم پی اهل بیت و جایه اصلا ما از مصنفات اینجوری داریم که بعدها قرن دهم و یازدهم این, این مرحوم شرف الدین نجفی تعویل الایات ظاهره کی فزال الحیثه طاهره ایشون جمع کرده اینها رو این اینطور نیست حالا در این قرن های متأخر باشه در قبل چهارم و پنجم چندین کتاب داریم که حتی من که قادر به تکسیل بودن و حال خوانده نشه کتاب‌ها تو این به اسم مناظر علی بن علی طالب مناظر فی اهل بیگ مناظر فی ارداه این کتاب تا حد زیادی مثلا جلد این اینطوریه مثلا هر جایی که یا اویان الذين امنوا شکی اون میگه فی علی بین. هر جایی اونجوریه مثلا فاسدین کافیه میگه مراد چی پیدا بوده همه می‌زنن موقع ولی اول دومی و سومی یه ترتیب معینیه خود این کتاب یه ترتیب معینیه که جنبه تعبیری داره این کتاب موجود یک تفسیر مستلح نیست از کردن که مثلا تمام قرآن باشه ازده رو داره معزمش تعویله همش هم تعویل نیست نه اینکالا که که همهش تعویل و معزمش تعویله اما همش هم تعویل نیست و مال علیه نبرایی موجود مال علیه نبرایی نیست خود علیه نبرایی من تفسیر داشته جزمن اون هم جای شبهه نیست حالا آیا اون تفسیر ایشان چی بوده؟ اونم برای ما الان روشن نیست چون بردی ها احتمال دادن که تفسیر کلن امام صادق بوده این هنوز برای ما روشن نیست اونی که به ذهن ما میاد تفسیر ظاهرا مرکب بوده یعنی دارش ربایات بوده خودش انجام داده خود مرهوم علی ابن ابراهیم در درجه اول و, عبر و عبر از اون اون طرف سر پدر ایشان اینها، شعن مهمشون نقل میراثه. البته نقل دقیق خوب ده قبل فرمویم شب دیم برزی سازی شده نمیشون مثلا ابرازن من منیدن ابرازن هاشم جوز فوق نوشته نرشته باشن ابرازن هاشم شعنش خیلی لعیه شعن نقل میراث از کوفه به قم که این کار من اعز کردم از وقت سالهای های خورده شروع شد من یک ذابطه تاریخی همیشه اعز کردم چون این خیلی مهمه میراث های اصحاب ما که زیر های حدیثه از سال های هشتاد شروع شد تا 150 این همیشه با تو که این آماده باشه هر چیز سر از جای خودت و این در کوفه بود مختصری در بسته بود از او مختصرتر خیلی مختصرتر در مدینه بود خیلی چیز مختصری اگه بود در قم بود خیلی مختصر فوق و بس این این در کوفه بود از سال 150 که بغداد تحسیز شد سال 25 دیگه رفتن طرف بغداد میراس های اصحاب ما رفت به طرف بغداد طبعا در این مرحله این علماءی که در بغداد بودن گاهی هم موفق شدن خدمت امام رسیدن اسمشه بگوید مرحله تولیده در کوفه مرحله تولیده علاقه مرحله تصیح و تنقیح و مراجعه و تنقید و انتقاض و بررسی بوده اما نسبتاً چند حرف در کوفه هم در بغداد ابتدای از بزرگان ما این کار را انجام دادن یعنی یواش یواش همون احادیث شروع شد به تنقیب و تصحیح تا حدود سال‌های 300 در این کتاب شبورضا ظاهره خط می‌شود از 320 مرحله دوم برداوت تدوین ماثر دوم بغداد که با آمدن کلینی شروع میشه برداوت حدود 320 و, و تا سال 450 با خروج شیخ طوسی از بغداد تمام می‌شود اون که ما الان تنین لحظهی که من در خدمتون نشستم میراز های زیر بنای عیمی ما داریم چیدین از دیگه نوت درصد شما این دوم برداده ها نوت درصد کاره که ما الان داریم می تو فقه ما تو حدیث ما تو رجال ما تو فهرست ما تو روایات ما اون کاری که ما الان داریم انجام می و علماء ما بهش مراجعه می این مال مکتب دوم برداده که از سالهای تا حدود 450 و ادامه بده مرتب قوم هم با آمدن مثل اولایم هاشم به شروع شد مکتب دول برداد چون هنوز زمانه اینه بود یه مختصری هم توش تولید علم بود بعد هم نیست نسبتا اونقدر زیاد نیست که افراد دسیار بزرگی داره مثل یونس مرد رحمان و مثل نبی امرو مثل هشام اینها تولید علمش اون مقدار ازمات بزرگیشون نیست مکتب دومبردار دیگه کلن تولید علم نداره مکتب دومبردار چون اواخر دوران قیبت سغراس دیگه مرحل تولید کلن نداره. یعنی مکتب دومبردار مثل ما چطور ما دیگران تولید نذاره این سوال نمیتونی بکنیم اونا هم دیگه تولید نداشتن از کلینی به بعد که در بردازن شیخ توسی و مفید و ابن غولوی ابن غولوی اصاسا خومی به برداز منتقل شد ابن قیلوه دیگرم این این بزرگان کارشون همون تنظیح و تصحیح و توضیح و اینجور جا و مقایسه و مقارنه و کم و زیاد و همین کارایی که متعارم از در اصول حدیث شناسی مکتب بقوم هم از کردیم یکی بیشتر نیست حدود سالهای 200 تا حدود سالهای 400 سال. یعنی بعد از رفات شیخ صدو آدابات این سی سره هشتر بیشون سره هشتر دیگر البته فرض 20 سال همین‌طور بزرگ ما از قوم صاحب نظر نمیشناسیم مکتب قوم هم خصایص خودش داره پس دو تا مکتب بغداد داریم، یک مکتب قوم داریم، این دو تا مکتب قم مکتب قم هم تولی توش هست اشتباه نشه خود قمی‌ها تولی توش داشتن که اگر توله مهمشن سوالات همیری تقیات همینیری واقعیت الله یکی از کاره مهمه سوالات سفار به امام عسکری است اونم توقیاتی اده از این قومی ها در خراسان را در راه ادفت حضر رزا رسیدن اونها رو نهارد کردن کاندان هشعی ها توی اخت قوم ما تولید هم دارید اما اضافه برون تصیح و تنقیه هم دارید توقیاتشون توقیات نست کشید توقیات روی توقیات حضر رزا دارن حضر جواب دارن دقیقا فهمنی این شمای ای فرصتی بیشه این آنها باید توضیح بیشتری از میکنم به نحوه اجمالی اطلاف وقت این آقایونه که قوم آمدن اینا اینه فرانش نکنیم دو شعن دارن یه شعن نقل یک شعن تنقید و تفصیل در شعن نقلم هم مثل همون تفصیل و تنقید فهم میکنم در شعن نقلم دو جورن نقل ضعیف، نقل درست ما اینجوری تفصیل مثلا سهل نزیادم به قوم آمد ا احمد بن محمد بن بود و سن نقل استری. فیرای نهاشم از کوفه به آمد و نقل استری. محمد ناری سیرفی ابو سمنه از کوفه به قم آمد و نقل استری. خوشا شد. پس تو مرحله نقل دو مرحله داریم صحیح و صحیح. این یک مرحله نقل اینا که نقل میکنن؟ کارشون این بود که فرض از کوفه آدام با یه نسخه سر کتابو سکن می‌داد که یه سری تالیات که رو از کتاب هست محبوب بدن، یهو سری تالیات که پاسو دادن کتاب و سلات حریذ، کتب متفرقه حریذ و حماد برقم پس این یک مرحله است یه مرحله این تو اومدن اینها رو بررسی کردن، مقایسه کردن، دقت کردن، تصریف‌ها، تحریف‌ها، اشتباهات رو پیدا کردن، معارضات، معارضه با حدیث دیگر نص تذکی کردن معارض با حدیث مثلا دیگری اینا رو بررسی کردن شواهد قبول کردن اون جایی که معارض داشته بیگه که عمل کردن یکی دیگه رو اصخاط این مجموع عملیه اسمش فقاحته اسمش تنریه اسمش تصیحه پس بنابراین اصحاب مومی ما دو جورن علی بن ابراهیم و پدریشون ابراهیم حاشم از قبل اولن البته ابراهیم هاشم از کوفه مستقیم آمد علی بن ابراهیم از خدمش گرفته اما ابن ابراهیم بیشترین شعنش همون شعن نقله خودش خیلی صاحب نظر نیست یاره خیلی قوی نیست اما مثلا احمد اشعری از بزرگان هم هم بسیار نقلش دقیقه هم خود صاحب نظره این نقطه ای کار در باره ابراهینا هایتون توجیه من دیدم با عنوان خبیه از ایشان ابن ابراهیم فقط به کتاب مرموم نجاشی نگاه کنم برای این کتاب نشون نگاه کنم تعبیر به فقیه در نجاشی نهماده نجاشی خیلی عباراتی که دقیقه فوق العاده ایمون عباراتی نجاشی خیلی باید کار کرد انصافا یستهب با که بر کتابیشان خیلی تحمس اما مرد است در نه اما مف... تفسیر داره حالا اگر فقیه نیست تفسیر داره این که بگید تفسیریشنم کلن از امام صادره این هم ثابت نیست نه از خود این عباراتی که فعلا در این کتاب ما میبینیم نه شواهد خارجی دلار میکنه که ایشون هرچی در تفسیر نه بعضی احتمال دادن هرچی در این تفسیر آمده بانون قاله نه قاله ساده را دستان این نیست این طور نیست نه من توضیح شهر میکنم پس این خوب دقت بفرمایید علیه مرانین تفسیری داشته و در این کتاب موجود مقدار زیادش همون تفسیر علی مقداری هم روایاتی است که مؤلف کتاب نقل کرده. اصلا نقش علی بن ابراهیمی ندارد دو تا علی بن ابراهیمی نیستن. در ذیل این آیه مبارکه که تعبیر کرده فقه و دینه دین حنیفان، دو تا تا روایت آورده همه مال مؤلفه کتاب، مال علی بن نیست. چرا به اسمش نسبت ندید؟ اینا چه کتابی این کتاب هست اما این مال علی بن نیست. یکیش گفته فقه و تشکل دین یعنی البلایه. این تفسیره هنیف رو معنای ولایت یه رسید یه تفسیرم قطرت الله لالک الدین القیم گفته لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین رلی الله اله هنه نهایت, اله نهایت. توحید اله هنه نهایت خیلی تعدیر عجیبه توحید تا ولایت باید گرد این توی زید همون رقایت این روایت مال علی بن ادراهیم نیست مال جامعه مال معلف کتابه برموم آبزار میفردن جامعه کتاب جامعه نداره کتاب معلف داره حالا معلف هم چیه درستی میشه از کلیم مقدار زیادی شواهد معیل است که علی ابن حاسم غزینی باشه این شواهد زیاده اضافه شواهد زیادیست اما ایشون کتابی به نام مسابیح و نور داره آیا این همون کتاب مسابیح و نور علی بن حاسم در حد افتیمال هست یعنی به حسب طبقه مشایخ نحوه تعبیر عمدش مشایخ به حسب مشایخی که در اینجا آمده با مرگوم علی ابن حاتن قردیبینی میخوره انصافا بعید نیست و با مزاج ایشون هم میخوره یک مزاج اخباریگریه خود علی ابن حاتن روز اخباری حسابه شد مثلا ایشون مثل مهمون شیخ صدوق علال و شرایع هم داره که مهمون شرایع زیاده زیاد نسبتاً ازش حدیث ندار میکنه از علی بن و عزیم ما و اصولاً در متون کتب اربعه علی بن خاطرن نقشی نداری مثلا میشه نخصروش یا تو تعظیم چند موردی توی مباحث فهرست ما نقش داره ایشان. اما توی مباحث روای ما الان بیشتر نقش ایشان تو ادله شرایع صدوق علی بن و قزمیه و اینصافاً صرفاً صرفاً همون اخباری هاست خودش تغص یر بیان زعفا که اون که نجوشی و از کردن این که علم و رو از اخبار گرفتن خودش مثل من که اخباری مرمانانی در زیل روایت لاتن قضل یقینه و شک یک قاعدی تعلیل باید اغلایی باشه نمیشه شارع مقدسی یک حکم شرعی شو تحلیل تعلیل شرعی بکنه شرع رو به شرع کردیم و که تعلیل اگر می‌خواد شارع تحلیل بکنه، باید تحلیل اوغلاقی باشه، باید به ارتکازی باشه، فلسفی اوغلاقی باشه. اما این خط اخباری که از علامه خط اخباری اون بشناسی، باز تحلیل رو تعبدی گرفته لذا لازم شما تو محاسن بردی، یکیش کتاب اله و شرایع. خود علی نماطین قزوینی اله و شرایع، خودش شیخ صدوق اله. دقت مثلا چرا از آن در هر و از آن دوبار گفته میشه؟ چون امام فرموده از این به خاطر شهادت شهادت هم باید ببینید خب این نباید به امام برگردیم تعلیل نباید باید عقلی باشه یکی از علامات که اگر خیلی راحت این آیونه به اصلاح اخباری مسئله روشن بشه تو مقام تعلیل هم باز به روایات تعلیل میکنم به جایی که به عقل تعلیل بشه به ارتکازات و اغلالی تعلیم بشه باز به تعبط تعلیم بشه خود شعاره وقتی میخواد بگیره خب نگه تعلیم نکنه وقتی میگه خسرت الله علتی فترم الناس علیه ها خب کسی که اصلا نگهده خب شعاره بخواد شما شما دو مرته میگیره چون من شهادت دو مرته بگیره خب تعلیم به ما این این که بگیم تعلی یعنی اینکه انسجام و قانونی که قانونمند اینجوریه اینجوریه. آقا تعلی که برنامه داره که انسان حق با نایگیه. تعلی باید عقلی باشه که. مناسب با تعلی شورای مجدسی که می‌خوام بگم باذن نمی بگید اون که عقلیش رو بگید. دیگر قانون دی ناجوری این مطلبی که من بحثشو در اونجا دین قیم و القییم و فطرت الله رو تفسیر کرده به توحید و نبوت و ولایت بعضا داره اله ها هنها نهایت و توحید خیلی عجیبه. تاولایت این در توحید تا ولایت درسته. دو سه تا روایت در این دفعه ما تعویل روایت رو اینجور میگیریم. و میگیم که این کتاب معتبره. من چند دفعه ارز کردم خیلی شاد از قرنهای هشتون و نهم همین کتاب موجود رو به نام تفسیر علی ابن می میشناختن. خوب دقت دارم. همین کتاب موجود ر یکیشم چون امروز صبح ماهی کنی خواهد مدنیه خونیم یکیشم مولا محمد عمین استراباده چون صحب بوندم تو بحث اول مولا محمد عمین استراباده هست تو خواهد مدنیه وقتی نهرمون کنی از تفسیر علیه ندران از همین کتاب موجود ها ما اعتقادی این کتاب موجود مال علیه نقیل ایشون هم که نهرمون میکنه که منطقه 1033 هست مرمونه مولا محمد علوی استرابادی ایشون هم که نقل میکنه خوب دقت بکنید ایشون هم از همین کتاب موجود به نام تفسیر علی نور نغری میکنه من چه شهران نمیتونم بگم تا اونجایی که معلومات من فعلا حد دل علم خدا نه عبدواقف تقديم ترین کسی که دیم از همین کتاب موجود به اسم علیل نور کرده حسن ابن سلیمان هویج شاگرد شهید اول این واضحه برای نه، نه، شو بدنا نناشمه. البته ما سيدا تا رو فردا عرض ميکنم می چون میگه مطلب فردا احتمالاً سيدا تا از اون تفسیر اصلی نقل کرده. احتمالاً علم عند الله. چون یه نکته حز درافت هست از منتظر نشه اینجا موشک برخوردن اگر رفیقین فردا این موضوع عرض میکنن، احتمالاً سبب اختلاف نقدی هیچ نوثی عرض بشه. یه مقدار بحث این کتاب میشامده. من یه توضیحات رو, رو بعد عرض میکنم. سهلن بیم په تا اینجا برسیم به فترسن لاحنسی فترانگانس علیه ها اگر اون تعویل رو بگیریم، که اصلا کلندی از بحث ما و تغییر سلق الله و خارجه. چون توحید است و است و ولایت اصلا رب که این حواله نداره. اما اگر ما اون تعویل رو قبول نکنیم حالا بگیم سنده زعیفه مصدر زعیفه درستیم خودمون به اینکه، که این آیه رو چه جور معنا فردا ان شاء چون به هر حال باید برگردیم به تفسیر علی نورانی چیز دیگه دارید داری، بحث از بحث ان شاء الله تعالی علیه <تصفيق>